بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز مخاطبان همیشگی برنامه جهان‌نما و شبکه افق خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمتتون گفتگومون رو با کارشناس اون که در تو با موضوع افغانستان قرار هست صحبت بکنیم آغاز می‌کنیم حتما در روزهای گذشته اخبار مربوط به افغانستان رو دنبال کردیم یا به گوشتون خورده خبرهای بسیار مهمی که در آینده افغانستان و ارتباطات ما با این کشور بسیار اثرگذار خواهد بود و بسیاری در این باره تعلیم متفاوتی رو ارائه کردن بعضی معتقدند که این اتفاق ممکنه منجر به اتفاقات بدی برای افغانستان بشه حتی حرف از تجزیه افغانستان زدن و اده معتقدند که نه اینها یک اتفاقات دوران گذار هستش و در هر صورت کشور افغانستان از این بحران هم عبور خواهد کرد و در مجموع این اتفاق رو یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان ارزیابی نمی کنن از اینو ما امشب در خدمت جامعه دکتر سید حسام رزوی کارشناس مسائل افغانستان هستیم تا صرف تا صد اتفاقات این روزها رو به بحث بگذاریم و امید باییم سوالاتی رو که در ذهن مخاطبان ما هم هستش رو بتونیم امشب پاسخش رو به بریم آیا دکتر خیلی خوش آمد الرحیم باندم سنوارز دم خدمت شما این صابتی عزیز و همه بینندگان برنامه پر مخاطب و خوب جهان ها را من در خدمت شما هستم خیلی ممنونم که در دروصدامو قبول شیدین و تشکر می‌کنم سلام علیکم علی موافقت بوشید یک روایت داشته باشیم در ابتدای کار از این که اساساً این اخباری که در این چند روز به گوشه خیلی حار رسیده شروعش از کجا بود افغانستان چه شد که دوباره در یک تلاطمی افتاده و خبرهایی که از اونجا میاد از کجا آغاز شد خب همونطور که همه مستحذر هستند ما داریم به تاریخ نزدیک میشیم که پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان هست یعنی از سال 2001 که آمریکا وارد افغانستان شدن و بعد از یک جنگ تقریبا 21 2 ساله سال گذشته آمریکا و طالبان در دوحه یک توافق دست پیدا کردند که طبق این توافق آمریکایی ها بعد تا اوردیبشنوم آه افغانستان رو تخلیه میکردن اما خب این با توجه به تغییر پست ریاست جمهوری در افغانستان و شیفتی که از ترامپ به بایدن صورت گرفت، بایدن یک فرصتی رو میخواست تا بتونه این برنامه رو تطبیق کنه و اجرا کنه. خب این خروج تا 11 سپتامبر یعنی شهریور ماه به تاریخ افتاده. ولی خب اون چیزی که مسلم هست دیگه تقریباً با پایان حضور ما مواجهیم، هم نیروهای ناتو هم نیروهای آمریکایی. و تو روزهای گذشته شاهد این بودیم در ماه‌های گذشته روزهای گذشته که پایگاه‌های آمریکایی تخلیه شدن اکثرا و آمریکای پایگار رو تخلیه کرد و بعدی پایگار رو به نیروهای افغانستان، ارتش افغانستان واگذار کرد. اما خب چه اتفاقی در حال بروز هست؟ این محل سؤاله و شما هم فرمودید و اتفاقاتی که این چند روز مردم دارن در اخبار باش مواجه میشه خب طبیعی بود که طالبان از ابتدای سقوط دولت در 2001 تا امروز که من شما با هم صحبت میکنیم به دنبال احیای دولت خودش هست. اونها این روایت رو دارن از خودشون که ما یک بودیم در افغانستان به هر شکل آمریکایی‌ها حمله نظامی کردند به افغانستان و در حمله نظامی حکومت ما سقوط کرده و ما دنبال بازگشت به حکومت در افغانستان هست. حالا اینکه چه اتفاقی تو این بازگشت خواهد افتاد رو توضیح این روایت رو در طالبان رو حق خودش می‌دونه. این حماقت که دوباره برگرد به حکومت. خب او این تعریف رو هم داره که در زمان حضور آمریکایی‌ها دولت‌هایی که مستقر شدند با نظر آمریکایی‌ها مستقر شدند و همواره تو این 20 سال از دولت های های کرده و بعد دولت‌های اشرافخانی مبارزه رو با دولت افغانستان و شد افغانستان ادامه داده تا امروز خب در این 21 سال هر زمانی که جنگی بین دولت افغانستان و طالبان می شده خب همواره با کمک آمریکایی ها دولت افغانستان وارد زمین جنگ می شده چه کمک چه در حملات هوایی چه در زمین و یک ای که اصلا خود نیوای خارجی درگیر این جنگ مستقیم بوده ما در سال 2010 نزدیک به 110 هزار فقط نیرو البته آمار دقیقه نیروی ناتو رو نمیدونم ولی 110 هزار فقط امریکای. امریکای در افغانستان حضور داشتن و درگیر جنگ بودن که بعدا این نقش مبارزه مستقیم در میدان به خاطر تلفات زیاد آمریکایی‌ها تبدیل شده نقش مشاوره و آموزش و اینها و کارهای امنیتی و جاسوسی که آمریکایی‌ها می‌کنه خب با, خ... با طبق توافق دوحه بین آمریکا و طالبان آمریکای متحد شده بودند که مواضع طالبان رو هدف قرار ندن. طالبان هم متحد شده بودند که تا زمان خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای آمریکایی رو هدف قرار ندن. و اتفاق در زمین داره میفته. یعنی دو طرف همدیگر هدف قرار نمی‌دن. البته آمریکایی‌ها چند بار نقض کردن و هدف قرار دادن ولی خب طالبان اون توافق رو نگه داشته و این رو داره که اینا دارن خارج میشن دیگه بعد این پس حملات خودش رو طالبان علیه مواضع دولت شروع کرد و شروع کرد به پیشروی در شهرهای مختلف. که خب هم در شمال ما ولایت های فاریاب، سرفل، حتی قور رو داریم در قرب، در ولایت فراه و حرات این اتفاق افتاده در مرکز ما پیش های از طالبان ببینیم و امروز این اوضاع داره پیش میده خب سآل پیش میاد که آیا اوضاعی که اکنون هست جنگ بین کیا هست؟ آیا این جنگ، جنگ بین طالبان و مردم افغانستان هست؟ این جنگ جنگ بین طالبان و دولت افغانستان هست. این جنگ جنگ بین اقوام در افغانستان هست آیا پشتون ها با غیر پشتون ها معبر میخوان میکنند؟ آیا شیعیان با اهل سنت میخوام درگیر مبارزه بشن چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این یک ای طرف سال. طرف دوم سال که برای همه این اینکه آیا آمریکایی ها بعد از بی از 20 سال دو در حضور در افغانستان؟ آیا امروز واقعا به این جمعدید رسیدن که بدون هیچ دست افغانستان رو ترک کنن؟ یا نه یک چیزهای پشت پرده وجود داره من دوتا مسئله رو باز میکنم برای بفهم. عزیزان که باز میشون نقطه اولین که ترامپ وقتی که قرار شد در مورد مسئله افغانستان تصمیم گیری کنه یه حرف جدی رو زد که مورد توجه قرار نگرفت حداقل از طرف رسانه های داخل ایران من نایدم زیاد درم رو توجه باشم ترامب گفتش که من دارم حزینه میکنم نیروهای من دارم تو افغانستان کشته میشن و میلیون ها دلار یا تریلیون دلار داره اونجا حزینه میشه و من امنیت دارم تو افغانستان درست میکنم و سود این امنیت رو همسایگان افغانستان دارن میدونن که حداقل دشمن منن مثل چین مثل روسیه با یک فاصله آسیای مرکزی مثل جمهوری اسلام میران مثل پاکستان وانگه من چرا نقشه پلیس رو بازی کنم و برنامهش رو بر این گذاشت که همزمان با خروج یعنی اگر آمریکایی‌ها شیطنت نکنن این خروج حتما منجر به جنگ داخلی نمیشه ولی امریکایی این برنامه رو دنبال میکنند که همزمان با خروج بیان اتفاق را پیش بیارند که اوضاع در افغانستان ناآرام بشه و بره به سمت جنگ داخلی این اوضاع ناآرام و رفتن به سمت جنگ داخلی قطعا اولین زربش بعد از مردم افغانستان برای همسایگان افغانستان این دلیل واضحه آمریکایی برای اتفاقاتی که امروز داره میفته خب یعنی از این قضیه می‌خواید نتیجه بگیرید که های امروز هم هنوز ما به ناآرامی به, مح... به اون دلیل به اون معنا نرسیدیم چه اتفاقی داره میفته ما باز زمان حضور آمریکایی در افغانستان یک طرحی بود به نام دیدیار تو طرح دیدیار چی میشد آمریکایا دولت افغانستان حذینی رو پرداخت می‌کردن به مردم و احزاب و سلاح اینا رو جمع‌آوری کردن یعنی ما احزاب مختلف که تو افغانستان سلاح بدست دست بودن درگیر جنگ داخلی بودن و بعد درگیر جنگ با طالبان تون تره دیدیار رو تحویل دادن امروز امریکایی ها و سرویس‌های های وابسته به آمریکا کشور اروپایی دوباره شروع کردن به باز توضیح سلاح بین مردم افغانستان باز توضیح سلاح تو بین مردم افغانستان یک معنی داره یعنی آماده شدن برای مبارزه مسلحانه این یک طرف سال طرف دوم سال این جنگ بین کی کیه این جنگ قطعا بین طالبان و مردم افغانستان نی بر اساس اینکه طالبان آمده است من میگم من با دولت افغانستان وارد مبارزه میشم یه عده میگن خب دولت برآمده از مردم هست دیگه آیا آره آقا این دولت رو برآمده از مردم دونست حالا من خارج از بحث دیپلماتیک میخوام بحث کنم اون بحث عرف دیپلماتیک بمونه سر دولتی که الان بر سر کار هست با رأی بیش یک میلیون نفر به قدرت رسید افغانستان کمتر از 13 درصد مشارکت یعنی آمریکایی‌ها دستاوردشون بعد از 20 سال حضور در افغانستان این بود که 13 درصد مردم پای صندوق‌های رای نیومدان. یه ایده تحلیلی. نیومدن یا نه 13 درصد بیشتر نیومدند. 13 درصد اون‌ها آمدن آره 13 درصد اومد. خب 87 درصد شرکت نکرد. حالا ایده من تحلیلی که آقا چون افغانستان ناامن و طالبان اوزه‌گیری می‌کنن و نمی‌ذارن مردم رأی بدن، آمار نشون داد تو ولایتایی که تحت تسلط طالبان نیست، مشارکت کم‌تره برعکس. دلیل هم داشتی دیگه فساد زیاد دولتی، عدم, تعمی... عدم توانی در تامین امنیت، عدم توانی در تامین اقتصاد، موضوعات مختلف و اینکه دیگه مردم افغانستان با آمریکایی‌ها واقعا بی اعتماد شدن. در سه انتخابات گذشته ها واضح رأی مردم افغانستان تغییر دادن. یعنی یک جای مردم افغانستان رأی داده بودن جانکری و افغانستان و تصمیم گرفت مردم افغانستان چیز دیگری بشه. معلوم اتفاق افتاد. و دولت تغییر کرد. خب ورود نکردن احساس کردن که تصمیم گیر برای اونها کس دیگه هست ورود نکردن خب این دولت ارتشی در اختیار داره با چند هزار نیرو چرا این سآل چرا بیشتر شهرهایی که در همینه هفته گذشته سقوط کرده تقریبا بدون درگیری سقوط کرده چرا؟ سآل هست دیگه چرا بدون درگیری سقوط کرده یعنی الان حاضرین در میدان و ما دوستانی در ولایت سرپل که تقریبا شیعه نشین از دوستان شیعه ما اونجا هستن با صحبت کردم با دوستانی در مناطق هزارجات صحبت کردم با دوستانی در غرب افغانستان صحبت کردم چرا با کمترین درگیری اتفاق میفته سرباز ارتش افغانستان تقریبا ارقی احساس نمیکنه که باید از جونش بگذره به خاطر امروز امروزون یعنی میخواد بگید که همسویی وجود داره بین اونها و طالبان نه همسویی هم وجود نداره ولی احساس نمیکنه هزینه نمیکنه که اینجا بعد وارد درگیری و بشه و جونش رو از دست بده اه. یک دو بزرگان قومی پا پیش گذاشتن از دو طرف یعنی هم از طرف طالبان هم از طرف بزرگان اقوام و قبل از اینکه وارد جنگی اتفاق بیفته وارد شهرها بشن، میرن هم مصاحح و مذاکره میکنم و شهر رو تقریبا بدون درگیری به در میاد حالا این دو میخوام تعریف و تمجید باشه ولی اتفاق در میدان داره میفته خب این تصرف این شهرها باعث میشه که امریکایی ها باز دوباره در پروژه نارامسازی نامعفرق بشن رسانه رو عمل کردند. از فرود ده روز پیش رسانه رو عمل کردند و شروع کردند برخی رهبران افغانستانی رو به ترقیب برای ورود به جنگ داخلی در حالی که همین رهبران افغانستانی چند ماه قبل چند دوره با هم با طالبان صدق نیز مذاکره نشستن و همین الان هم من مطلع به شما میگم که هم رهبران افغانستانی هم طالبان بدون حضور و دخالت خارجی و از جمله ها حاضران دوباره سری میز مذاکره بنشینن و جنگ نکنند. ولی امریکایی ها برن بدون آره ولی امریکایی ها نمیخوان خروج بدون دستاورد داشتن باشن. دستاورد امروز برای خروج آمریکایی از افغانستان ناآرام کردن و خروج برای باقی گذاشتن یک منطقه شلوغ و پرجنگ و ناآرامه. اولین ذرهش برای همسایه هجومه جمع کثیری از مهاجرینه تو شرایط الان که هم بیماری کرونا هست هم شرایط اقتصادی دنیا هست و شما احساس کنید دفعه با مثلا با 400 هزار نفر در مرز مواجه بشید که میخوان وارد کشور باشد نه ما پاکستانیا همین آسیا مرکزی همین چین همه همه اتفاقات داره میافت این اولین دومین مسئله شه که زمین آماده میشه برای رشد افراط یعنی شما افراط افراد رادیکالی در خمسایی افغانستان زندگی میکنن و دنبال زمین امن برای فعالیتن یعنی هم در آسیه مرکتی، ها مرکزی چچنی ها چچنی‌ها ها هم در уйگورهای چین هم در مناطق قبایلی پاکستان اینا دنبال زمینی برای افراد گرین اگر حکومت مقتدر در افغانستان چه قطعا این زمین شکل نمیگیره و آمریکا تو این تر شکست. خب یه سوال اینجا پیش میاد خود طالبان مگر نماد افراط نیستش اگر که بتونه به این روان ادامه بده و حکومت رو دوباره به دست بگیره خب یعنی اینجا ممکنه مخاطب این سوال برش پیش بیاد که این حرف شما درست که در خلأ قدرت ممکنه فرصت برای یک سری جنبش‌های مثلا تومرو افراطی پیش بیاد حالا من نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشم و اونها کسایی که بتونن در... قدرت رو به دست بگیرم ولی مگر حالا در برابر اونها یک جریان متعادلی وجود داره این تصوری هستش که به درست یا غلط بخش از افکار سوال داره نسبت بهش خب مگه حالا فرق طالبان با اونها چی هستش کسی که در میدان در افغانستان حضور داشته و کار کرده باشه اینو میفهمه که مرزهای افغانستان در همه این سالهای بعد از حضور ها تقریباً در اکثر این سالها در اختیار طالبان بود همین الان مرزهای جمهوری اسلامی ایران در آسیا مرکزی همین امروز بندر شیرخان بندر در شمال افغانستان که بین تاجیکستان و افغانستان تو تصرف طالبان یعنی مدیریت مرزهای این که نه مدیریت مرزها حالا حضور با طالبان بوده. طالبان یه قاعده فقهی برای خودشون دارن که برگرفته از قرآن هست و این لفظه که لا ضرر و لا را الاسلام میگه ما برای همسایگانمون ضرری درست نمی‌کنیم. ولی <تصفيق> اجازه هم نمی‌دیم اونا ضرری برای ما ایجاد کنن. ما در امور داخلی کشور دیگه دخالت نمی‌کنیم. اجازه نمی‌دیم کشور دیگه در امور داخلی ما دخالت ولی حق همسایگی رو رعایت می‌کنیم. من یه مثال بزنم. در زمان حکومت طالبان 96 تا 2001 خب این مسئله آب بین ما و افغانستان بوده. مانه. باز این تعبیر به تطهیر یا خوبی نباشه، من میگم اون بحث یه روایت بشکنم. واقعی، یه روایت داشته واقعی میگم دقیقاً. هیئت از جمهوری اسلامی ایران به مدیریت آقای محمدرضا بهرامی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران میرن افغانستان. این روایت رو من آقای وحید موجوده میگم که اون موقع معاون وزیر خارجه طالبان بوده و در کتابی که ایشون به نام طالبان نوشته از سیاست خارجی طالبان گفته هست، کتابش هم در بازار موجوده. ایشون میگه هیئت ایرانی اومد و گفتش که شما آب رو بر رو ما بستیم. گفت ما همونگی وزیر خارجه سالون و متوکل رفتم، ایدا نه رود خشک و آب بسته نشده. بعد از چند وقت بارندگی شد، سر پر شد، آب جاری شد و رفت و دوباره حیات ایرانی اومد گفت آب اومد شما رو باز کن گفتن نه آب هست و ما حق همسایه رو میدیم. گفت خب تبلیغاتی فهم گفت نه این منتی وجود نداره، ما حق همسایه رو, رو اعمال میکنه. در همه بعد از سالهای اون، در همین زمانی که میگم مرز در اختیار گروه طالبان بوده، ما چه مشکل امنیتی ای داشتیم در مرسای شرقمون به جز پاکستان آیا مثلا ما شاهد رشد گروه های افرادگره مثل گروه ریگی بودیم در افغانستان یکم دیگه پارو فراتر بذارین کشورهای عرب هاشی خلیج فارس تمام توان مالی و تصدیاتی خودشون آوردن و داعش رو در قرب افغانستان شرق منطقه ما مستقر کردن با همکاری امریکایی ها این همه تشدت‌های آمریکایی در اختیار داشت قرار گرفت جا به جای و جای نیروای آمریکایی، نیروای داشت تصدی بالگردی آمریکایی، تو مرز ما چه گروهی با داشتن آورده کرد و اینو از مرز ما دور کرد؟ اگر از طالبان بود؟ خب، آن واریش سریع باید تایید دیگه در افکار عمومی هستش. خب افکار عمومی, عمومی رو این رو بالاخره فراموش نمی‌تونه بکنه. و به هم همی... همین جا برسم دیگه. مثلا میگم اتفاقی که سال 72 فوتت تو مزار شریف یا مثلا اتفاقاتی که بعضی‌ها خبرش از افغانستان بلاخره بیرون اتفاقاتی میفته که مثلا نماد مثلا خوشونت گرایی و افراتیگر اینا باید میشه که افکارون بگه آقا بالاخره نسبت ما با طالبان چیه اگر مثلا اینها افراتی نیستن پس نقطه مقابل اینا که تو اون مثلا سرزمین اگر که اینها اونی که پس تصویری که رسانه از اینا ساخته نیستن پس تصویر واقعی از طالبان چیه اینها یه سردرگمی در حد اقل فرقی شده. در زمان حکومت طالبان این یعنی از سال 1994 که دیگه طغیان طالبان رشدش جدی میشه تا 96 که به حکومت میرسه و بعد از اونتون دوره 5 6 ساله این قابل قابلیت الگاده در افغانستان حضور داشت حضور جدی هم داشت یعنی برخی از اتفاقات اونجا توسط الگاده ای ها اتفاق نه که طالبان نکردن طالبان الان خودشون هم آقای محسن اسلامزده یک مستند ساخته که تنها میان طالبان اونجا میرن که ما یه گذشته ای داشتیم ولی مطمئنیم که اون گذشته گذشته روشنی نیست و ما دنبال ترمیم چهره چهره خودم نفادتمون گذاشته است ولی خب این یه بخشش اونها بودن یه بخشش ال قاعده ای ها بودن در حادثه مزار شریف خب همون شب فرمانده میدانه طالبان اونجا میاد با ویوسی مصاب نکنه همون شب 45 دقیقه فاصله ما این کار رو نکردیم حالا طالبان محکومون حادثه هست ما هم هنوز اون حادثه برامون فراموش نمیشه و بعد یک روزی این پاسخ جدید داده بشه که چه در داخل چه در افغانستان چه اتفاقی افتاد که اون حادثه مزار شریف به شکل گرفت طالبان بارها شاید اینو بیان کردن که ما اصلا به قصد زدن دیپلومات ایرانی وارد مزار شریف نشده بودیم که بخواییم این حالا اتفاق افتاده بله قابل پوشیدن هم نیست چقدر پوشیدن هم نیست ولی... اه... حالا با وجود همه این روایت ها اون تصویر واقعی چیه الان از افغانستان امروز حالا این بحثی که ما داشتیم اینه دیگه که یه اتفاقی افتاده امر به اون خروج نهاییشون نزدیک میشن طالبان میخواد بیاد حکومت رو به دست بیاره و اینو حق خودش میدونه از سال 2001 دیگه قدرت دستش نبوده و طالبان درست یا قلی تصویری ازش ساخته شده تو ایران بالاخره یه سری کارهایی داشته پیشینه داشته اقداماتی داشته و الان اگر همین مهم نباشه گروه های افرادگره دیگری هستن که جای طالبان رو بگیرن بلکه بهتر از اون باشه این الان سوالاتی هست که افکار درگیرشه موقعی که من ارثیام خدمت تو می‌خوام سم اونجا برسم این هست که رسانه کار خودش رو انجام میده و ما در یک سیل اخبار و امواج رسانه‌ای قرار می‌گیریم و اون ما رو به خودش می‌بره ما می‌خوایم حداقل خلافی نی بخوایم حرکت کنیم قطعا آسیب می‌بینیم ولی باید حرکت کنیم یعنی این تعارف نذیره شاید ایده خوشحالشن شاید ایده ناراحت بشه تصویری از طالبان ساخته میشه اون تصویر کنار تسبیری از جنگ همین امروز ساخته میشه که اصلا منطبق بر واقعیت نیست اون واقعیتشیه مثال میزنم باید یه مثال می زنم بعد یه تصویر این چند روز داره منتشر میشه از یک فرمانده میدانی تالام بنام مولا نیازی که میاد تهدید میکنه شیعیان و هزاره ها رو لشکره فاطمی رو بعد میگه ما ایران ایرانو بگیریم مشهدو فتح کنیم فلان کنیم اینا این آدم حدود دو سه ماه پیش کشته شد آره توسط طالبان هم کشته شد و سالها پیش توسط طالبان اخراج شده بود از این گروه و بعد توسط حالا اخباری که من شنیدم امنیت ملی افغانستان آمریکایی جذب شده بود. و خبری خوندم که اصلا در مهمان سرا و بیمارستان امنیت ملی افغانستان بدن درمان شد موقعی که مجروح شده بود حالا و کشته شد. چرا این تصویر الان شروع میشه به انتشارش؟ حالا یه بحث دیگه اساساً الان این بحث شیعه کشی که نگند در افغانستان رفته در این چند روزی که ناآرام شده چقدر ایش همین میخوام که این تصویر چرا الان منتشر میشه؟ و این ویدیو چرا الان منتشر میشه این ویدیو یه قبلی هم داره یک بعدی هم داره دیگه این ویدیو قبلش همین آدم مولود منو نیازی داره موزه میگیره علیه طالبان که اینا پاکستانی ان ما اینجوری نیستیم ما ملی هم، ما داخلی هم، اینا چون با شیعیان دست برادری دادن اینا هم دیگه رافزی هدف ما طالبانم اصلا اونش منتشر نمیشه یه بعدی هم داره که منتشر نمیشه که ما با دولت کاری نداریم با آمریکایی کاری نداریم خلاصه اون هم منتشر میشه این قسمت جدا میشه و منتشر میشه ادمی که دیگه وجود خارجی در, در دنیا رسانه کار خودش داره میکنه رسانه همون برنامه آمریکایی رو داره پیش میبره همونی که هم به شما گفتم الان من با اطمینان به شما عرض میکنم که در نبرتا این چند روز در افغانستان چیزی به نام شیه کشی به من نسل‌کشی اتفاق حتما نیفتاده و نمی‌افته اصلا طالبان بناشو نداره اون به این فهم رسیده که اگر میخواد در حکومت مشارکت کنه یا همه حکومت باشه در افغانستان باید با همه اقوام کار کنه و نه مثل گذشته برخورد کنه این نکته اول دو رسانه میاد برای تقابل با طالبان فقط شیعه رو مطرح می‌کنه و تلاش میکنه در میدان هم یه اتفاق میفته یعنی ما به این آگاهی میرسیم که برخی از بزرگان شیعه رو آبرده و تسلیح میکنم و میگن برید بسیج مردمی کنید بجنگید با طالبان نتیجه این اتفاق چیه من اجازه رد میشم با شما کاری ندارم شما اگه دست به سلاح بردی به طرف من تیراندازی می‌کنی من حتی سر شما تیراندازی می‌کنم یکی از از بین میبره دیگه این نتیجاش اینه که تعداد زیادی از دو طرف کشته میشن که یک طرف شیعیانه. ولی بعدا این برداشت نباید اتفاق بیفته که شیعه کشی داره میشه. ناگوین همین الان من دارم به عنوان یک هشدار در واقع میگن که جنگی بین شیعه و سنی، جنگی بین شیعه و طالبان وجود نداره در افغانستان، نه الان نه در گذشته. یعنی هرچی بوده در میدان نبرد اتفاق افتاده، این که برای مردم از خونهشون بکشن بیرون، اینکه قبور رو خراب کنن، اینکه مرقد‌ها رو خراب کنن. اینکه این اتفاقات بیفته مجلس رو بزن این اتفاقات نবুده الان رسانه داره تحریک میکنه عواطف شیعیان رو به ویژه ها رو که آقا شما بیایید بسیج مردمی کنید طالبان اومد میخواهد نفرششی شیعه کنه و شما رو بزنه اینجا همین اول معنیش اینه که امریکایی ها برای نام کردن زمین افغانستان بهترین گزینه رو راه اندازی جنگ مذهبی میدونن یک دو اگر جنگ مذهبی بین شیعه و اتفاق بیفته اول کشوری که قطعا در نوک پیکان قرار میگیره جمهوری اسلامی ایرانه جمهوری اسلامی بالاخره نمیتونه در مسائل افغانستان سکوت کنه. ولی مسئله که وجود نداره رو می‌خوام به وجود بیارن. یعنی تو این چند روز اومد ثابت این سوال شما، اتفاقی به عنوان کشی اتفاق نیفتاده است. این نکته اول. در آینده هم توی این نبردها اتفاقی به عنوان کشی نخواهد افتاد مگر اینکه شیعیان خودشون در بسیج ملی که اسمش رو مسلح بشن، یعنی آمریکا دوباره سلاح توزی کنند. و آمریکایی‌ها ها به نفع خودشون بخوان گروه های مردمی رو وارد جنگ با طالبان کنن که قطعاً تون جنگ از دو طرف کشته میشه ولی این باز معناش معنای جنگ شیوس و نیم نیست این رو هم در جنگی همشت و یه جنگی داره این کار رو میکنه منتشر کردن ویدیو مربوط به عبدالمران نیازی که دیگه وجود نداره منتشر کردن سحنه هایی از سال 1996 که دیگه الان واقعا اون وجود نداره همش در واقع مؤید اینه که آمریکایی‌ها پشت پازل این ماجرا قرار خب فکر نمی‌کنید حالا مجموع این تحلیل‌ها کمی خوشبینانه باشه؟ ببین من بذارید صریح بگم ممکنه برخی این تحلیل‌ها رو بشنون بگن اینها در واقع چشم‌بستن به واقعیت. اینها خوشبینی به طالبانه. اینها حتی مثلا تایید طالبانه. فکر نمی‌کنید همین برداشتی ممکنه صورت بگیره؟ یک سوال از همه عزیزان که این مساله رو مطرح کنم من اینو نمی‌دونم. امطری مناطق افغانستون تو بیست سال گذشته کجا بوده؟ صاله دیگه صاله اساسی. طبیعیتاً پاسخ شما اینه که مناطقی که دست آمریکایا بوده نبوده. و احتمالاً مثلا اونجا با طالبونه. من عمطری مناطق در 20 سال گذشته تو افغانستان مناطق شیعه نشینه. شیعه نشینه. از غذا در مواصره اهل سنت و در مواصره طالبانه. چرا اتفاقی به عنوان نفوذ شیعه اتفاق نیفتاده؟ یک چرا؟ حالا من میگم نکاتش اینه 1. 2. داعش طرف مثلا گرفته. با همون اتفاقی هم خودشو بیرون میده که اون توس حامل شیعیان رو یک نفر رو توش میدوزه اون کودک دختر 9 ساله رو سرشو رو میبوره و رو منتشر میکنه و اون جنبش در افغانستان راه میافته و 13 نفر از اون آدما اسیر باقیموندن کی اون اسرا را آزاد میکنه طالبان درست افراد زیادی در گوشه کنار افغانستان از شمال تا جنوب تا غرب تا جنوب شرق به نام قد علم کردند مختلفی از یعنی هدف قرار دادن کی مقابله میکنه جدی؟ خود یه سوال طالبان. پیش میاد دیگه انگیزه ی طالبان تو این قضیه چی بوده؟ نکنی یک اصلا در فقه طالبان من نمیخوام تدیر کنم این اتفاقات بیش بین نشه در فقه طالبان شیعه رافضی نیست در فقه حنفیه اصلا شیعه به عنوان دشمن مذهبی ناخته نمیشه نه طالبان که مردم افغانستان هنفی مذهب حنافیه به سمت تصوف و عرفان او اصلاً در قید و بند شیعه کشی به عنوان یک نسل کشی از یک جمعیت نیست که به اسمش بذاره رافضی بعضی اینجوری بیان میکنن که آقا اینا جمهوری اسلامی ایران ارتباط گرفته خوشبین اینا بابا ما یک وزنی داریم در افغانستان کشورای دی هم یک وزن دارن در افغانستان چون همه قدرت های جهانی رو در افغانستان حضور دارن از روسا، از چینی ها از آمریکایی همه جا حضور دارن ما چه وزنی در مسئله افغانستان و طالبان داریم که طالبان فعلا به خاطر تاکتیک بیاد به خاطر ما این کارو نکنه بعدا که به قدر رسید بیاد این کارو بکنه ما وزنمون چقدر هست ما چقدر خودمون رو داره وزنم بینیم که الان تونستیم اتفاق طالب در فقهش در عملش این نبوده که بیاد این کارو بکنه بعضیا میگن آقا اون موقع یک کابلنگید اتفاق افتاده مزار شریف بله اتفاق افتاده بله افتاده کسی نمیتونه منکر بشه که اون زمان افرادی کشته شدن و شهید شدن راند شیعیانی نبودن که در مقابل طالبان مبارزه کردن شهید شدن که اهل سنتی هم بودن که در مقابل طالبان جنگیدن و شهید شدن مگه آقای احمد شامسود همه تیمش اهل سنت نبودن و جنگیدن و کشته شدن شهید شدن راستن دقیقاً سوال اینه این آیه یعنی من میخوام بگم که تمام بحث فقط شیعه و سنی نیست یعنی یک نگاه منتقدانه به طالبان که به نظر میرسه ادله قوی هم داره این هستش که بالاخره چه اهل سنت افغانستان چه شیعیان افغانستان کم مبارزه نکردن با همین طالبان و کم خون ریخته نشده در دفاع از افغانستان در برابر طالبان چرا حالا باید مثلا طالبان دوباره بعد از 20 سال به راحتی برگرده و بتونه مثلا حکومتش رو احیا بکنه این اون مسئله اصلی علمان خیلی کنه اولا اینکه طالبان بخواد به راحتی برگرده و حکومت رو احیا کنه نشدنیه شاید طالب در شاید من نمیدونم شاید طالب در ذهن خودش اینو بپرورونه که میتونه بیاد و دوباره و تمام حکومت رو به دست نمیتونه این کار بکنه؟ نه که نمیتونه. شاید به لحاظ نظامی یک اتفاق مقطعی بیفته ولی برای دوامدار بودن یک حکومت، برای ادامه حکومت بر مردم، برای اینکه یک دولت مستقل و مقتدر تو افغانستان باشه که بتونه مردم رو و زندگی مردم رو اداره کنه، قطعا طالبان به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه. طالبان نه اینکه مجبور باشه شرایط افغانستان به این سمت بره که طالبان باید با سایر افراد و گروه ها بشینه که هم این که نشستن با هم باید باید باید. کن با با نشستن با هم یعنی چندین دوره بین رهبران مجاهدین و سیاسی افغانستان در موسکو مذاکرات شکل گرفت در سطح عالی یعنی در سطح عالی رهبری طالبان اونها در سطح عالی مشارکت کردن همین الان هم اگه امریکایی ها مداخله نکننم وازی اتفاق خواهد شدنیه طالبان هم حرفش اینه که آقا آمریکایی‌ها نباشن ما قطعاً افغانی به نتیجه می رسیم. خود افغانستانی هم حرفشون همینه رهبران غیر آمریکایی افغانستان هم حرفشانه. اون بوخته رهبران ها افغانستان که کاملاً ذوب در آمریکا هستن کاری ندارن. که همین امروز نوع برخورده اونها در آمریکا رو داریم می بینیم که واقعاً برای مردم افغانستان هم زننده است. و باعث رویه. ولی رهبران غیر آمریکایی افغانستان که جهادی هم هستن باز نگاهشون همینه. چون اگر دخالت خارجی نباشه، اگه دخالت غربی‌ها نباشه، ما میتونیم تنهایی به توافق بین‌افغانی برسیم. حالا با 1 درصد کم و زیاد از حکومت ما میتونیم 50-50 برسیم، 60-40 برسیم، یک ائتلافی بکنیم در پارلمان، ائتلافی بکنیم در وزیران نگ ائتلاف بکنیم در سفینای اتفاق افت. طالبانم قطعا به عقلانیت خواهد رسید که به تنهایی نمیتونه همه حکومت رو در افغانستان داشته باشه. ولی باید زمینه مذاکرات بین‌افغانی فراهم بشه. که ما فرمی کنم جمهوری اسلام ایران یکی از کشوریه باشه که بتونه راحتی زمینه مذاکرات بین رفخانی رو فراهم کنه چرا؟ چون همه طرف های افغانی از جمله طالبان و رهبران جهادی به این جنبندی رسیدن که جمهوری اسلام ایران صادق ترین بازیگر در حوزه افغانستانه ممنونم که بیننده برنامه جهان و را هستید ما امشب قرار هستش که تحولات اخیر افغانستان رو با حضور دکتر ستح بررسی بکنیم و خب مفصل تا الان اتفاقاتی که در این چند روز خبری شده رو یک موری کردیم یک سوال اساسی تر وجود داره اون همین که فارق از اینکه آیا این اتفاقاتی که داره رخ میده به جنگ داخلی در افغانستان منجر بشود یا نشود شما آینده افغانستان رو چطور ارزیابی می‌کنید خیلی معتقدن که این اتفاقا میده که آینده خوبی در انتظار مردم افغانستان نیست چون همچنان هرج و مرج و داره قلد پیدا میکنه و وضعیت این کشور. نظر شما چیستش؟ هستش؟ ناخودایی در من نکته رو گفتم تو بحثام. دوباره تکرار میکنم. اگر دخالت خارجی در افغانستان صورت نگیره، قطعاً افغانستان آینده امنی رو خواهد داشت. کما که گذشته افغانستان هم همینه. افغانستان سوال همینه دیگه. بالاخره با توجه به امریکایی آمریکایی ها دارن الان خارج میشن از افغانستان، باز اونورم طالبان در حال پیشروی هست تو بسیاری از مناطق این کشور. شما معتقدید که این ته این اتفاق چی هستش؟ من احساسم بایده که اگر پیشبینی شما از این تحولات چی هست؟ اگر در این کتاه مدتی که ما الان حضور داریم یه اقلانیتی در رهبران افرانسان و یه اقلانیتی در طالبان به وجود لید شما خوش که این همچنه اقلانیتی پیش بیانید بله احساسم چون راه چاره دیگه وجود نداره چرا که خوشبینی چون ما معمولا میگیم که تو بحث مثلا سیاست خارجی و روابط اینا خوشبینی خیلی معنی نداره حالا میخواین به آمریکا باشه ما مثلا طالبان باشه اما من خوشبینی به آینده افغانستان معنیش اینه که خوشبینی مفرط وجود داره نیستن من چون میدان رو دارم هر روز رصد میکنم این رو میفهمم که مردم افغانستان خسته از جنگن ای دلی این دلیل اینکه میگم مقاومتی صورت نمیگیره خسته بودن از جنگه به خاطر این, این تجربه خیلی تمامل به جنگ با همدیگه نداره طرف مکنی. شما اینه؟ راه برد اساسی و کامل این هست که همه این طرف های خارجی تصمیم جدی بگیره برای عدم دخالت همه اینه افغانستان از گذشته زمین بازی قدرت‌ها بوده بر انحام گرفتن. چه خب چه اتفاقی نمی‌افته؟ چون خرید کشورهای خارجی به خصوص امریکا که مثلا نمی‌آد بالاخره داخل در دلوقتي چه دلوقتي صورت نیوفته؟ در حالی که خود رهبران افغانستان و رهبران طالبان، رهبران افغانستان، من رهبران جهادی و سیاستمداران افغانستان، نه دولت افغانستان. درست. این جنبندگی رو باید داشته باشن که خودشون سر، سن... نه هفت دیپلماتیک نیست اینجا واقعاً. یعنی جای دیپلماتیک ولی اینجا که دارم همش به شما میگم دیپلماتیک نیست، از نظر دیپلماتیک نگاهش نکنید. باید به این جهنمندی برسن که اگر خودشون سرنوشت خودشونو خودشون با دست خودشون تعیین نکنن براشون سرنوشت تعیین میکنن یعنی اینجا باید بیان فارق از همه اولغه هایی که قبل داشتن فارق از همه نگاه هایی که تاناکن. تالبان گذشته سفیدی نداره یعنی نمیتونه الان بگه گذشته من کاملا سفیدان رو بپذیرید ما همین الان به شما دارم میگم در قشر شهرنشین دست رسانه، حتما مقاومت جدی در آن طالبان خواهد بود و در مقابل بازگشت افکار طالبانی خواهد بود. طالبان باید بیاد با واقعیت روز در افغانستان خودش منطبق کنه تا بتونه موفق بشه. تا بتونه موفق بشه. از طرف دیگه رهبران افغانستانی هم باید رو بپذیرند. که آقا جنگ جنگ داخلی مسلح شدن امروز و افتادن به جون یک برادر دیگه تو افغانستان ده سال دیگه اینا رو به جنگ ادامه خواهد مگر آمریکایی ها مثلا بیست سال جنگیدن، تش طالبان تموم شدن اونم هم با همه امکانات یه گروه پارتیزان بره خوب باشه یا باید باشه بخشی از واقعیت افغانستانه، طالبان بله، می خب خون که قابلیت اینکار هستی الان وقتی خود دولت افغانستان که دولت برق حاله و داره کار میکنه خودش حاضر میگ من 50 درصد رو حاضرم بدم و بیای تو اطلاعات این یعنی پذیرکن یعنی نمیه که از این عبور کنه وقتی همه دنیا میرم با این گروه مذاکره می‌کنن، یا آمریکایی دو سال وقتشون رو گذاشتن علنی شاید قبلا هم غیر علنی وقتش شماهاش با این گروه مذاکره کنه خب این گروه داره شکست بدم دیگه یعنی مو از ترامپ آدم وحشی‌تر و که دی نداره میتونست یک زمین سوخته ایجاد کنه همه افغانستانو بمبارون کنه و طالبان رو از بین ببره ولی خب میفهمید طالبان بخشش همین مردم افغانستانه دیگه یعنی شب داره میجنگه روز داره کشاورزیشو میکنه. <تصفيق> نمیشه اتفاق بی رهبران بعد به این درجه از عقل برسن که الان تنها راه عبور از خارجی هاست به معنای هر خارجی کهشون خواین بزنین در صدش آمریکا و نشستم با همدیگه رسیدن به اطلاف طالبان بعد این رو بفهمه که به تنهایی نمتونونه حکومت کنه و باید وارد مذاکر و ممساحله با سایر گروه ها, گروه ها بشه با جمعیتی ها بشینه, با ض وحدتی ها بشینه, با گروهها های دیگه بشینه و تکلیف آینده افغانستان روشن کنند ویژیکیشی که همه طرف تو افانسا مسلمونن تفاهایی که پای مناززه و همه اینا قطعا به یک قانون اساسی مشترک درست حسابی میرسن همه اینا به یک فقه مشترک برای قانون اساسی آینده خواهند رسید همه اینا به یک دستگاه قضایی مشترک که تأمین کنه منافع همه اقوام و مذاهب رو خواهند رسید یعنی خیلی دور نیست یعنی یک جنگ جدی قومی و مذهبی وجود نداره که بخواد تهش در رسیدن به اطلاف برای حکومت به پوچ برسند یعنی اون هم طرف حنفی هست طرف مقابلش هم حنفی هست این طرف شیعیانن اون طرفم هم شیعین همه با هم دیگه در تعصبات مذهبی در تعصبات فرهنگی در اشتراکات همه با هم مشترک یعنی خیلی اصلا دور نیستن ولی بازیگر خارجی نمیذاره به این اقلانیت برسن بازیگر خارجی الان ارتش افغانستان رو توی حالت توافقی قرار داده داره مردم افغانستانو بسیج میکنه علیه همدیگه خب من اگه بمونه که افغانستانی امروز پدرم تو جنگ با طالبان کشته بشه فردا حتماً کوتاه نمیام در, در برابر طالبان و او طالب هم اگر پدرش بواسطه یکی دیگه کشته بشه حتماً کوتاه نمیاد و این جنگ ادامه دار خواهد شد همه این سالها بنابراین بهترین راه این هستا مطمئنم در بازه چند ماه یعنی بین پنج ماه تا شش ماه این اتفاق خواهد افتاد محور شرق یعنی جمهوری اسلامی ایران چین و روسیه به همراه پاکستانی ها اینها تقریبا محور مطمئنتری هستند برای که بتونن اجماع سازی کنن در افغانستان چرا؟ چرا؟ چون حضور یک دولت امن یک دولت مقتدر یک سرزمین امن و توسعه یافته به نفع اینا هست. اینا همسای افغانستان این هر در کل منافع توسعه در افغانستان نباید مخدر نه. توسعه در افغانستان این اقتصاد پویا. توسعه در افغانستان بازگشت مهاجرین از این کشورها و عدم مجدد حضور مهاجرین تو کشور دوم. دولت مقتدر و افغانستان قوی یعنی عدم حضور دشمن اصلی این کشورها جمهوری آمریکا تو افغانستان. دولت مقتدر یعنی افرادگرایی گرایی دیگه به زمین نرسیدن و امنیت داشتن. خب این کشورها قطعا نگاهش این که یک صلح پایدار دوامدار با حضور همه مردم با حضور همه اقوام و سلایق شکل بگیده بنابراین قطعا در راهبرد سیاست خارجی ما چهارتا کشور یعنی روسیه، پاکستان، چین و جمهوری اسلام ایران این مشاهده میشه همزمانش اینه که طرف مقابل یعنی ناتو و امریکایی ها خلاف این به نفسشون هست یعنی وجود جنگ داخلی، به هم افتادن مردم، به جونم افتادن مردم، عدم وجود اقتصاد باثبات، عدم وجود امنیت در مرس ها رشد مواد مخدر، وجود افرادگرایی گرایی در افغانستان، اینها همه میتونه بدون هزینه برای آمریکا و ناتو و اروپایی ها کشورهای همسایه افغانستان رو درگیر کنه و هزینه زیادی از ما مشغول خودش کنه. همین الان شما به لحاظ روانی چند شعر مردم ایران اذیتند. با همین ویدیوهایی که منتشر شده آقا اگه اینا بیان دوباره طالبان اومدن تا مشهد و سبزوار و دزدی و ادم ربایی همه اینا داره تو ذهن مردم متبادر میشه که بعد تو ذهن مسئول جمهوری اسلامیام گذار خواهد بود پس بنابر این این محور به عنوان یک محور قدرتمند هم قدرتمند منطقه‌ای هم قدرتمند جهانی هم لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اقتصادی میتونه جمع کننده دو طرف باشه بدون مداخله فقط نقشش این باشه که دو طرف رو پای میز مذاکره بنشونه و شرایط رو آماده کنه برای آشتی ملی تو افغانستان ولی بعد از اون نه در قانون اساسی نظر بده و دخالت کنه نه در شکل دولت آینده افغانستان دخالت کنه نه در میزان مشارکت و اقوام مشارکت هیچ فقط به عنوان تسهیل کننده این مذاکرات میتونه ورود کنه و من میدونم که جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت رو داره که این اتفاق بیفته این هم رهبران جهادی ارتباطش با جمهوری اسلامی ایران ارتباط دیرینه است و نزدیکه و همشان جمهوری اسلامی را به عنوان یار صادق در همه این سال‌ها می‌شناسن. هم گروه طالبان تیک تماسایی که با جمهوری اسلامی ایران داشتن تو همه این سال‌ها این رو فهمیدن که جمهوری اسلامی ایران بازیگر صادق در این حال مقتدری است. و ای قرار باشه منافش در افغانستان که از غذا اهل در افغانستان یکی از منافع جمهوری اسلامی و خط قرمز جمهوری اسلامی ایران به بخ... خطر بیفته، قطعا جمهوری اسلامی ایران این حق رو بر خودش قائله که از منافع خودش چه در مرحله در اون طرف مرض اتفاق افت. حالا این بحثم که اشاره کنن من یاد اتفاقاتی افتم که چند ماه پیش در واقع مذاکراتی که بین وزارت خارجه ما و طالبان انجام شد. خب واقعا خیلی بااستاپ داشت که شما بهتر از ما اخبار رسالت که در جریان هستید. اساسا نقش وزارت خارجه رو، دستگاه دیپلماسی ما رو در این سال‌ها در تو مسئله افغانستان چطور انجام می‌دید؟ ببینید در بحث دیدار آقای ظریف با گروه رهبران سیاسی طالبان از جمله های ملو برادر یک نکته نهفته است که باز اینجا میگم ما دوچاره قرق شدن تو بازی رسانی و سری رسانی میافتیم شما از, از اصل مذاکره آی زریف و گروه طالبان دفاع میکنیم؟ حتما دفاع میکنم چرا؟ همه دنیا همه دنیا این حق رو برای خودش قائل شد که با طالبان و عنوان یک واقعیت موجود در افغانستان وارد مذاکره بشه و تماس بگیره الان شما کشور رو بیارید اینا خیلی کشورها رو سفر کنید یعنی چین رفتند اوزبکستان رفتند ترکمنستان رفتند پاکستان رفتند کشور مختلف چرا حجم اونجا صورت نمیگیره؟ آیا آقای وقتی که آقای دریفتی دار میکنه با یه سواله آیا واقعا هیچ حجمه صورت نمی یا نه؟ اون حجمها تو ایران مثلا باستاب نداره؟ حجمه صورت نمی گرفت. آهی آهی مل آی پمپوی وقتی آی مله برادر عمر اینجا باهت ظریف دیدار کرد بلافاصله توییت زد که آها بفرمایید ایرانی‌ها باه آی گروه تروریستی دیدار کردن چند روز پیش شما اونجا داشتید توافقنامه امضا می‌کردید با پمپوی با همین گروه چطور موقعی که شما می‌شینید با اینا مذاکره می‌کنید چند سال به توافق می‌رسید و میری کنفرانس می‌گیرید و همه دنیا رو دعوت می‌کنید اینا گروه تروریستی نیستن وقتی اینا به کشور دیگه سفر می‌کنن گروه تروریستی هستن وقتی وارد ایران میشن تازه میشن گروه تروریستی و شما وسط در میاد ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران حق داریم که تماس برقرار کنیم ما نزدیک به هزار کیلومتر از مشترک با افغانستان داریم مسله مواد مخدر هست مثلا امنیت هست آقای آمریکا تو با همه توان داشت داست که تو مرز ما مگر میشه ما تماس داشته باشیم با گروهی که همه مرز اختیارش بوده مگر میشه جله اسم تماس خودش رو قطع کنه. ما هزار مسئله مشترک با افغانستان داریم یک واقعت موجود در افغانستان همه دنیا مذاکره کرده ما هم مذاکرن کنیم. دفتر قطر برای برایاش شکل میگیره طالبا میان در قطر یک دفتر سیاسی میزنن برای که بتونن آزادادله ما همه دنیا مذاکره کنه، مانده سازمان ملل هفت سه روز اونجاست. فرماندهان نظامی آمریکا هر روز قطر دارن مذاکره میکنن با اینها. هر جا اینا رفتن شما باید ببینید تصاویری شو که فرش قرمز انداخته شده، رفته ولی ما تو ایران باز نگ... یک الزاماتی داشتیم که اتفاقاتی نیوسته. این نکته اول. نکته دوم در بحث وزارت خارجه در دولت های روحانی وجود داره تو منطقه. که بالاخره وزارت خارجه نسبت به همسایه‌ها کم توجه بوده و از های اقتصادی منطقه به خوبی نتونست استفاده کنه حتی بر زور تحریم ها حتی این نغمه یال به دکتر زریف مطرح کردن ایشون پاسخ داد که من تعداد سفرهایی که به کشورهای همسایه رفتم بیشتر از تعداد سفرهام به کشورهای مثلا غربی بوده بر اساس آمار ایشونی هم چنین پاسخی داد میخوام اینم برداشت اس... اتفاق می افتاد. ولی ما اون اتفاق خوشایند نبوده ناکنید ما تقریبا از ابتدای دولت‌های روحانی حالا من تاریخ دقیقش نمی‌دونم رفتیم به سراغ یک پیمان همه جانبه همجانبه‌ای یعنی نمیدونم امنیتی اقتصادی با افغانستان دولت افغانستان تا روز حاضر نشد اون پیمان رو امضا کنه حتی پروتکلات نمادین تا حاضر نشون اون او بالاخره نکاتی داره ولی ما همه تخم و مرامونو گذاشتیم تو سبد امضای این تفاهم نامه که امضا نشد وزارت خارجه به نظر من تو مسئله آب بعد جدیدتر ورود می‌کرد بلاغرا حقابه ما مشخص هست اعتراض ما میتونست در مجامع بین المللی جدی تر باشه نسبت به مسئله حقابهمون این اتفاق نیفتاد و ما همه چیز رو تقریبا گیر زده بودیم به اون پیمان که امضا بشه و اون پیمان تا امروز امضا نشد. نشده حتی بارها مثلا تو پایمدار و آراخی چند تا سفر رفتم و اعلام شد که بعد از این سفر امضا میشه که امضا نشد اون پیمان پس در مجموع این که دستگاه دیپلماسی ما میتونست فعال تر باشه. بله دستگاه دیپلماسی قطعا میتونست فعال باشه. دستگاه دیپلماسی ما تو اینکه جمهوری اسلامی ایران نقش پررنگ تری تو هزار بازی کنه میتونست تر ورود کنه. دستگاه دیپلماسی میتونست منافع جمهوری اسلامی ایران رو در حالی که دولت افغانستان تو زیادتر حالت خودش قرار داشت میتونست به راحتی بیشتر تأمین کنه که خیلی از جاه تأمین نشود. و من تقریبا موفق نمی نقش دفاتر دیپلماسی رو تو حوزه افغانستان و جای کار بیشتری داشت. ما میتونستیم همزمان با تلاش برای امضای پیمان با دولت راه دیگه آی اشرف را غنی، راهبردهای دیگه‌ای رو تا در حوزه فرهنگ و اقتصاد پیش ببریم. نه در تنها در حوزه سیاسی. که تو این حوزم ما هم ما کمکاری کردیم، کم کاری کردیم. یعنی در حوزه اقتصاد ما حتما افغانستان میترسه که از های خوب باشه هم برای واردات محصولات هم برای صادرات محصولات ایرانی و یک بازار بزرگی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداد من چند وقت پیش با رایزن اقتصادی صحبت میکردم خب اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و همیشه ما در یک ترس و واهمه از ناامنی تو افغانستان به صورت دیپلماتیک قرار گرفتیم که حضور در افغانستان رو حضور در یک میدان خطرناک میبینیم که اینطوری نیست واقعا اینم یه نکته دیگه درباره این مسئله یه نکته دیگه من رو کنم های توی چند روز گذشته تو حوزه مسائل افغانستان خب افراد مختلفی دارن تحلیل اراند خبرگزاری های داخلی روزنامه های ما افراد مختلف خب ما با یک جمعیت عظیمی از عزیزان مهاجر افغانستان اینجا روبرو هستیم که اینها هم بالاخره نوع نگاهش و مسئله طالبان نگاه مثبتی نیست و طبیعی هست که با واکنش های منفی روبرو رو بشن عزیزان خب آیه من از دو مرغای رای فی پوچان رزومه زد در مورد بحث شیعه افغانستان و جنگی که تو افغانستان هست من فهم می‌کنم شوند آلمپشت مطالعه تو افغانستان داریم ولی بحث علمی بود ولی افتادیم به این که شروع کردیم به توهین به همدیگه شروع کردیم به این که از همدیگه با یک جنگی کنیم. در حالی که من فهم می‌کنم محل بحث علمی فراهمه. که بیایم همین الان رسانه‌ای جمهوری اسلامی میران مثل امروز روز برنامه ها رو من نظری و ها کارشناس دیگه می‌تونم بیان و واقعیت میدان رو روایت کنم من که امروز اینجا پیش شما هستم قسم نه تأثیر طالبان نه تأثیر دولت افغانستان اما حتما تغبیه آمریکایی هست ولی من می‌خوام واقعیت میدان رو روایت کنم برای عزیزان من وقتی می‌بینم که این موج مثل اون گفتم ویدئوی عبدالمندان نیازی به این صورت داره بین بچه‌های هم فکر ما هم که ما تو جمهورستان فخش میشه. بعضی مدیران در جمهورستان دیدم که این ویدیو رو دست به برای من میفرستن که آقا این چه خبره طالبان دارن مرزو میگیرن؟ این نشان از یک ناآگاهی و عدم دسترسی به سند و واقعیت میدانه که در نهایت باید میشه ما حرکت کنیم به سمت تصمیمات احساسی که حتما به نفع مردم نیست. من از مواجهه عزیز افغانستانی‌ها رو دارم. قطعا من دوباره تکرار میکنم حتما این عزیزان ضربه خورده هستن از گذشته طالبان ظرب خوردن از دوران حکومت طالبان تو افغانستان و نگاه خوبی نخواهم داشت. اما امروز واقعیت میدان 20 سال بعد است. آیا طالبان تغییر کرده یا نه؟ من احساس می‌کنم تغییراتی کرده. حالا اساساً شاید تغییر نکرده باشه ولی حتماً دیپلمات‌تر شده. حتماً به این فهم رسیده که نباید وارد کشتار بشه. حتماً به این درک رسیده که باید با همه اقوام کار کنه. حتماً به این که امروز ما تو افغانستان مسئله از طرف طالبان حداقل برای شیعان اتفاق نمی افته به صورتی که بگیم نستگوشی داره اتفاق میافته. اینها ایناها رو ما واقعا نیم مهاجه این عزیز افغانستانی هم به نظر من وارد این جنگ رسانه‌ای اگر می با یک روایت دقیق و الحمدلونه دسترسی دارم به میدان اقوامشون تو افغانستان هستن میتونن دقیقش رو بگیرن و بیارن و حرف بزنن. بعضی مواقع نالطالبی منتشر میشه که از پایه خرابه و ذهن اینا رو مشوش می‌کنه. اینا بالاخره خانواده‌شون تو مرکز افغانستانن. چند شب در دایکندی طالبان وارد شدن، از قبر اجنازا آوردن بیرون، آتیش دادن، تیکه تیکه کردن. خب خود والی ولایت دایکندی فرداشون گفت آقا این اتفاق نیفتاده. ولی تو یک حجمی رو منتشر می‌کنین هم آزرده میشه خودتون هم یک احساساتی را جلبیه دار میکند از دو طرف خب ملت ایران قطعا کنار مهاجرت از افغانستانی استاده و دلش میتبه برای اینا و حتما نگران برای آینده افغانستان برای آینده شیعه افغانستان و بعد هم چون اینجا هم اطلاعات درستی وجود نداره که حرفهای در فضای مجازی رد و بدل میشه حرفهایی گفته میشه بعد از دهان برای مدیران جمهوری اسلامی برخن حرفی بیرون میاد که نتیجهش میگم همون بازی در زمین آمریکایی شما میگید فارغ از این جفتسازی های بدون بدونه که کسی, کسی رو به تطهیر طالبان مطمئن بکنه یا کسی کسی رو به حمایت از دولت امریکایی که تو افغانستان مستقر هستش بیایم یک روایت واقعی یک توصیف حقیقی داشته بزاده اون چیزی که داره میگذره فقط نکنه یکی میداد طالبان تعریف میکنه دفعه همه حجمه میارن آقا اینا طالبان ملا فلانیه ملا, ملا محمد فلانه یه فل یه طرف دیگه میاد از حکومت تعریف میکنه یه دفعه شجوع میرن آقا بیاین آمریکاییه این ای دولت آمریکایی باشه اینا اصلا فاشیستن اینا پشتون بازن اصلا فضا نیست واقعیت میدان همینی که من به شما امشب گفتم و فراتر از این نیست من حاضرم ساعت هم دیگه واقعیت میدان رو بگم واقعیت میدان چی هست که در زمین داره اتفاق میفته واقعیت میدان رو ببینن مردم و طبق اون تحلیل کن گذشته وجود داشته حتما هست ولی امروز واقعیت چیست؟ آیا امروز میشود امکان جنگ این هم وجود داره بسم الله به جنگ. آیا پیروز داره این نبرد؟ قطعا پیروزی نبرد نداره. اگر مردم افغانستان با هم دیگه وارد جنگ شدن نتیجهش فقط تلفات انسان‌های بی‌گناهه. شما میگید آخرش به جای اینکه مردم افغانستان با هم بجنگن بهتر با هم گفتگو بکنن. در این... که ما در سوریا معتقد بودیم که گفتگوهای سوری سوری تنها راهه. اینجا هم گفتگوهای... خیلی متفاوت بود. مثال مردم اگر... هر کشوری با همشون گفتگو کردن هم تا که افغانستان شرایط برای مذاکره و مصالحه به شدت فراهم، حتی نسبت به عراق و سوریه و همه کشورهای دیگه همین، اونجا شرایط الان فراهمه برای مذاکره و مصالحه. و شما خوشبین هستین که خود مردم افغانستان با درسگیری از تمام تجارب تلقی که در این سالها داشتن، با هم گفتگو بکنن و یک ب... یک مدل حکومتی برسن که ان شاءالله خودشون در اول تأمین بشه. یه نکته دیگه هم بگم چون زیادم وقت نیست، ناکن طالبان اگر به ذمه خوش بخواد به حکومت برسد اگر اصلا فادهش نشه من میجنگم که به حکومت برسم چقدر برای اون حزینه داره که با یک افغانستان ویرانه به حکومت برسه یعنی الان بیاد جنگ کنه پل خراب کنه مدرسه خراب کنه خودش باید بسازه اینا خودش باید بسازه, بسازه دیگه چه دلیلی داره که این کارو بکنه اصلا یکی از دلایلی که من توی تحلیلی می توی روزنامه افغانستانی امروز نمید بود که آقا طالبان داره جنگو فرسایشی میکنه میاد جلو که تلفاتی وارد نکنه یعنی جادو از بین نره، پلو از بین نره، انمون مدارس از بین نره، مساجد از بین نره، چون خود اینو حفظش کن از اون طرف هم رهبران افغانستانی اگمیخوان حکومت کان نواد با این ویرانه ای رو به رو بشن. بنابراین به نظر میرسه اگر دخالت خارجی به جام آمریکاییا نباشه، دو طرف به این سطح از اقلانیت رسیدن که سلاح رو به زمین بذارن، نه یکی تسلیم یکی دیگه بشه، دو تایی تسلیم هم بشن، دو سالی تسلیم خواست مردم افغانستان بشن. و از مذاکره و مسلحح دولت اطلافی آینده رو تشکیل بدن که همه ااقواام توش ضور داشته باشن به نسبتتی که خودشون تم بعض میگن نسبت نفوس بعض میگن به نسبت ااقواام هر چیزی که هست بین خودشون رو میفهمند قانون اساسی رو و اساس همه خاص های مردم افانزن شک بدن به حقوق همدیگه احترام بذارن به حقوق زنان احترام بذارن گررانی نداشته باشن از اینکه چه اتفاقی در آینده دور خواهد افتاد آینده نزدیک رو اگر با هم تشکیل بدن برای آینده دور خودشون میتونن تصمیم گیرن شده. مشکوکمم از بس اگر نکته دارید که به من جنبندی میخواید مطرح بکنید یا فکر میکنید مبحثی هستش که جا افتاده تو دل صحبت ها ما فرصت داریم فقط یه نکته دیگه هست من تو این چند روز خب چون حوزه تخصص هم حوزه کار افغانستان است تو این چند روز من با پیام های زیادی روبرو میشم که آقا چرا ما وارد جنگ نمیشیم در افغانستان الان طالبان اومدن ما با اینا جنگ میکنیم علیه هستن... طالبان وارد علیه جنگ طالبان چرا وارد جنگ نمیشیم. همه موضوعاتی که من تو برنامه گفتم همش دلایلیه که ما نباید وارد جنگ در افغانستان بشیم و جمهوری اسلامی ایران وارد نزا در افغانستان نخواهد شد یا حداقل من تفسیرم برای آقایون مدیران این است که نباید وارد این نبرد در افغانستان بشه چون هر کشوری و هر نیروی و هر عنصری وارد این کشور بشه در واقع با دست خودش مردم افغانستان رو در مقابل هم قرار داده الان جنگی بین مردم افغانستان به معنای کشدار یا نسکشی یا از بین بردن یک قوم یا مذهب نیست که ما بخوایم ورود کنیم به اونجا بنابراین این سال هم سال خیلی خوبی نیست که پیگیرش باشیم حتی در رسانه ها که نقش سیاست, سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه افغانستان در شرایط کنونی ما این هستش میگم یک سری ها رو بعد در کنار رو هم جمع بیره که ظرفیتشو داره یعنی ما بتونیم با بلوکش حالا بلوکش هم امنفزایی کنیم اونجا در ما ما بین ما روسیه چین و پاکستان اینها به عنوان تسهیلگر تا آغاز گفتگوهای بین افغانی یعنی سیاست خود مردم افغانستان کارو درست خارجی جمهوری اسلامی باید به این سمت فراتر از این رفتن یا کمتر از این اومدن قطعاً منافع جمهوری اسلامی ایران تامین بله ممنون تشکر میخواهم از رضوی تشکر می کنم از اینکه وقت خودتون و مفسر به تمام سوالات کاربرال در ذهن بنده بود پاسخ دادید فکر کنم پاسخ خیلی از سوالاتی که مخاطبان ما هم امشب برنامه رو باه کردن داده شد. و از شما هم تشکر میکنم که تا این ساعت با ما همراه بودین ان تا دوشنبه شب ساعت 22 شما رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم تو ما خدا